جلسه ی سیانو سیلون. یعنی در این بس اون بود و این تفصیلی توضیح و شرط کامل ال اولا یعنی ال جملتون اولا جمله اول از جملاتی که ممالهون محلنام جمله اول از جملاتی که دارای محل راید چه جمله ایه؟ الخبری. جمله خبریه. جمله خبریه کدوم؟ جمله خبریه. ال یعنی ال جمله در یاش یای نسبته و تاشت های تعنیسه. یعنی ال خبریه تو استفاد یعن جمله موطله مثل از یادتونه که گفتیم بوده و دیا علحدای قص سامدی یا که منصوبه به سامدی است اینجا میشه جنبه ای که منصوبه به خبر بودن. یعنی خبر است. و هیا الواقعه خبر الموبد این. و اون جنبه است که واقع شده باشه خبر موبتد. و اگه خبر موبتد واقع شد میشه چی؟ معرب ال مبتدا او احد نواسخه یا خبر شده باشه برای یکی از نواسخه مبتدا و خبر حالا به حسب اینکه اون ناسخ چه عملی بر سر خبرش میکنه اعرابش تغییر میکنه مثلا اگر این نباشه میشه منصوب اون جمله محلن و اگه پانه باشه میشه منصوب اون جمله و محلها الرفق همه نسو خلاصه ای کلام اینه محل جمله خبری یا رفق است یا نصب ملون و لابد دفیه ها من زمیر مطابق لح و این رو میدونید که اگر جمله اسمیه یا فعلیه خبر واقع شد یعنی خبر محتداش شد که بعدش هم ممکنه که خبری یکی از نماسق باشه سلام بده خبر شد حتما باید دارای زمیری باشه که چیکار کنه ربطش بده به چون جمله مستقل ده. جمله خودش چیه مستقل ده. به تنهایی میتونیش کار کنه افاده معنا کنه وقتی شما میخواد بگید این جمله مستقل نیست آه. این جمله مستقل نیست به چه دلیلی به اینکه خبر مبتلا شده یعنی خود این جمله باید اسناد بدی به مبتلا تا بشه یه کلام کامل در اکشن اینجا این نیاز به رابطه همین مورد در مورد صفت هم هست چون ما میگید صفت باید میاره رابط باشه چرا چون جمله صفت خودش نقشه کامل کننده نداره اومده یه چیز دیگر توضیح داره لذا حتما باید دارای رابط باشه همین مفه هست تو جمله حال هست جمله حال خودش مستقلن نمیخواد معنای بعد که اومده حیعتی یه چیز دیگر همین مفه هست تو جمله سله هست جمله سلیه باید دارای اعراض باشه به چه دلیل به دلیل اینکه جمله سلیه اومده موجودشه توصیفه جمله چون به خودی خود دارای استقلال معنوی است اگر شما خواستید به جمله بگید که تو استقلال نداری تو اومدی اسناد پیدا کنی به مبتدا یا تو عملی اسناد پیدا کنی ارتباط پیدا کنی به محصول. یا تو اومدی حیعت فاید یه چیزی رو بیان کنیم ها. یا اومدی توضیح بدی محصولی رو در یک چنین جای نیاز رابط داری چیزی بیاد ارتباط ایجاد کنیم دوم جمعه رو ببنده به اونی که شما باید. استقلالش رو ازش دید. لذا میگه لابد دست در جمله خبر، لابد دست بود یعنی چاره هیچ چاره ای نیست لاچاره ای در خصوص جمله خبریه از زمیری که مطابق با محتدم شد یه زمیر باید بیاد مطابق محترم. حالا این زمیر من زمیر مذکوره این زمیر مذکور باشه ها مثل زیدون زربتو بود یا زیدون ابوهو قایدون دران زیدون زرفتوهوی زرفتوهو جمله دلیه زیدون ابوهو قائمون های ابوهو برمیگرده جمله اسمیه این تو مذکوره او مقدره یا ممکنه که مقدره باشه این زمیر مذکور نباشه اگر نباشه در لفظ تقدیر میگید مثل الورغا قفیزون بدرخنه البرگ و قفیزون به همه البرگ یعنی گندم. قفیز پیمانه است. به همه قولشه. یعنی گندم یک پیمانه به یک درهم همه خب و مبتدای اول قفیزون مبتدای ثانی به در جار و متعلق به آمن مقدر خبر م. الان این جمله قفیزون بدر همین خبر ال جمله اسمی قفیزون بدر همین خبر حل دو تا اشکال در این جمله هست یکی اینکه که نکره شده مفتدا و مصبق ندارد چیزی مصبق داشت دو دوبا میشینه که جمله جمله قفیزون به همین که خبر واقع شده دارای رابط رابط نسبت به البور درش لذا اینجا میگن بوده قفیزون منحو به درهمن یه منحو بعد از قفیز در قفیز. خب این منحو که میاد حل و درست اولا جار و مجبور بعد از نکره میشه چی؟ سفر و این مخانی میشه نکره مخصصه و دارای مصفر یک و ثانیه منحور زمیش برمیگرده تا از و رابط خبر میشه به هر دو اشکال رو با یه منحور مخصصه حالا ممکن شما بگیدیم منحور ما رو جا بپهمیم عقل انسان قرینه ی اینجا وجود داره ها؟ قرینه یه وجود داره که چی که وقتی یک جنسی رو میگن بعدش یه مقدار و قیمتی رو میگن اون مقدار و قیمت مال همین جنسه یعنی اگر یک نفر اومد توی کوچه داد زد پرتقال کیلویی دو تومن آ این کیلویی 2 منظورش کیلویی از همین پرتقاله من منظورش اینه که پرتقال باید خود سی انسان میگه که اگر یه کالای شد بعدش یک کالاییزه شود باعث خرید پیمانه یا یک وزن یا خدمتی رو آوردن اون وزن و مال همین این مال یا در چند جا هست که ما خبرمون نیاز به رابط بگیر نداره خبر نیاز به رابط نداره رابط زمین نمیخواد نه اینکه تقدیر میدیم اصلا نمیخواد من منظورم الا اذا اشتملت على المبتدا مگر زمانی که خبر جمله خبریه مشتمل بر مبتدا باشه جمله خبریه مشتمل بر مبتدا باشه یعنی چی جمله خبریه مشتمل بر مبتدا باشه یعنی لفظ مبتدا در اون جمله تکرار شده باشه حالا بعضی گفتن معناش هم اگر تکرار بشه قابل قبول ولی معنا رو اکثرا قبول نکردن لفظ رو سد در درصد مثل القاره اتو مل قاره اتو الان الگاره اتو مقتده مقتده اتو ما قبر مقدم الگاره اتو مقتده محفظ این جمله خبر الگاره ایه این جمله خبر الگاره ایه افتو رابط کنیم تجار خود لفظه مقتده یه مثال اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین این همون نوارت قبط بکیم چرا دو دو مثال زدن این جا, این مورد که مشتمل باشه خبر قبر برمتدار مال جاییه که دلالت بر تعظیم بکنه یا دلالت بر تحویل بکنه با حیل و چشم یعنی به حراس انداختن میگن یعنی تحویل و تفخیم یعنی یا مورد مثل الگارت و ملغاره هم و ملهاققت و امزال این هاست که دلالت بر ترس انداختن و تحویل میکنه و یا مثل اصحاب و یمین ما اصحاب و یمین و امثال این هاست که دلالت و برد و تعظیم بزرگ نشون دارن همین همین جایی مشخص شد نزا اینجا دیگه نیازه به رابط یا در واقع اینجا اسم زاهر جای زمین رو بگیر یعنی قانون ببینید الان اگر این عبارت که داریم ما این دوتای بالت گزاییات قرآن بودن اگر مقامش مقام تحویل نباشه مقام تعظیم هم نباشه باید به جای اسم ظاهر چی می آورد؟ زمیر می گفت القاره تو ما یه ما غیر از این یک او الا جنس شامل این علاعت اون خبر علا مفتده یعنی ازا اشتملت علا جنس یعنی ازا اشتملت اون خبرو علا جنس شامل لح بخوره به مبتده. یا اینکه جمله خبر مشتمل باشد بر یک جنسی که شامل مبتدا هم یعنی در جمله خبر عمومیتی باشه که مفتده هم داخلش محتدا هم داخل همون عمومیت که اینو ما مثال زیاد زدیم مثل نعمر رجل و زیدان آه. نعمر رجل و زیدان چجور تحکیل میکردیم؟ قدیم نعمر فیل ار رجل و فائلش این افلاح از افلاح جنس نعمر رجل خبر موقتن زیدان محتده محفر و مویدیم زیدان یکی از اعضای این جنس رجل دیگه جنس رجل, دیگه. جنس رجل دیگه. یعنی هر مردی رو شامل زید هم یه مرده. شامده او هم مشخص زیدون نعمر رجل یا نعمر رجل و زید, زید بشه محتدای ما اخر نعمر زیدون نعمر رجل خواله او الاجنس شامده بر پس میبینید در نعمر رجل دیگه ما زمیری تحمیری میکنیم و زمیری هم بجورد خود همون الرجل که جنس و شامل زیدن میشه که فایده کار اون اشارت الیک ادپس به جای جنس یعنی ازا اشتملن على. على اشارت الیک یعنی خبر دارای زمیری باشد که اون زمیر بعد چی خبر دارای اسم اشاره باشد که اسم اشاره برگرده به چی؟ خبر دارای اسم اشاره است که اون اسم اشاره چیه؟ برمیگرده به امتبایی به جای زمیر اسم اشاره برمیگرده یا ای از قرآن نمیساک میزنم مثل چی؟ لباس و تقبا زالکن خیلیم لباس و تقبا زالیک خیران به شرط که زالیک اعرابه دیگه نداشته باشه که اعرابه دیگه هم بدن اشاره اینه الان لباس و مبتدا محتدا مبتدای دوم دوبون خیران خبر زالک زالک ها خیرون جملهش خبر لباس رابط کو، رابط اسم اشاره زالک است. که بر میگرده به بر میگرده به او اشارت این چند مورد شد تا مثال هاش رو یاد گرفتون بیگه الگاره اتوم الگاره نه من لجل لباس و تقویز خیلی سه تا مثال یاد بگیریم افتا میشه و آخری کانت نفس المبتده یعنی کانت جمله خبر نفس مفتد. جمله خبر این خود مبتده باشه یعنی در معنا خود مبتده است مثل زمیر شن و زمیره بسه قول و قوبه الله و یکی از جاهایی که عود زمیر مزمون متحقه لفظی رو بهیم شد هم اینجا قول و قوبه الله و عهده قوبه مبتدا الله مبتدای ثانی عهدون خبر الله بعد الله و عهد خبر و خب رابطش کنی رابطش خود جمله الله هست چرا؟ چون مرجع همین زمیر او است خوبه اود میکنه به الله آهد جملهش او اود زمیر به مرجع متاخر لبز رتبهی لبزی متاخره که میبینید یه الله آهد متاخره رتبهی متاخره چون خبر خبره و چیه؟ مفترض. مفترض. پس جایی که جمله خبر عین خود مفعول باشه و عین خود مبتدا است که تونسته بشه مرجع زمیر یعنی اون جمله خبر که میتونه بشه مرجع زمیر زمانی که عین خوده همین زمین بشه. مرجع زمین همون خود زمین زمین کنایه است از مرجع خوده. او برمیگرده به ذ فرق بین او و زید نیست ذ صریحه اسم صریح اسم آشکاره او زمینیه که بهش بردیگرده تا جمله خبر تمام شد. از تو دو همیش حالی گفت جمعه که حال بابش و شرطها انتا کون خبری گفتن خوب یاد بگیم شرط جمله حالی که چی باشه خبری دلن. محصه حال خون بود, بود, بود. شرط جمله حال اینه که خبری باشه پس این جمله جمعه اینشایی خبر واقع چی حال واقع غیرموسدرتن به حرف استقبال و حرف استقبال هم بر سرش در نگم باشه اگر اینها بر سرش در اومده باشه دیگه حال شد. پس چی شد؟ یک خبریه باشد. انشایه یه نباشه جمله حال. دو حدات استقبال و سرش در ممیدنه. و لابد در بین رابطه جمله حال هم اجازه رابطه باشه. باید رابطه شد باشه. مثل خبر. چرا چون این جمله مستقله بعد معنای استقلالی به ولی ما میگیم این مستقل نیست. این باید حیعت یه خودش به تنهایی اگه به کار برنه و علاوه ولابد من رابطه فن اسمیتو حالا رابطه در این با رابطه در خبر ممکن ممکنه رابطه در اینجا فقط واو باشه در جمله حال رابط میتونه زمیر باشه میتونه واو باشه میتونه هر دو باشه آه. رابط میتونه زمیر باشه میتونه واق باشه میتونه هر دو باشه که به واقش میگن واقع حالیه فل تو به و زمیر او عهده ما اگر جمله اسمیه حال مازا شد ممکنه با باشه ممکنه با زمیر باشه ممکنه با هر دو باشه مثل اینکه بگیم جا وحوه هو زاهک. جا انی زیدون وحوه چی؟ زاهک الان جا انی زیدون وحوه زاهک اینجا چی برمیگرده؟ همواب همواب جمعه شو. حالا ممکنیم وابشو برداریم بگیم جا انی زیدون وحوه اینجا چیه؟ ممکنه یه جا باشه مثل لئن اکلهو زعبو لئن اکلهو از زعبو و نحنو اصبتون و نحنو اصبتون با اینو اینجا فقط واقعه دیگه زمیر نیست اگه این نهنو نحنو وجود داره درسته زمین نحنو وجود داره این زمین نحنو به حال برد و... نمیگرده میگه لعن اون لام رو چی میگن لام لعن رو خب لعن اکله و زهر یعنی این اکلهو با میخورد به یوسف زهرم که خواهدش اگر بخورد این یوسف رو گرد و نحن و اسبتون و حالا که ما یه سری جماعت قوی هستم و حالان بید فرادرها بکنم این موقع ما دیگه سرمون باید بذاریم و این ونحن و اسفتون حال هست و فقط زمیر بقید واب رابط بشه چرا چرا فائلش زعبه هو و این جمله من از مصبتون حال از یکی از ایناست دیگه نحنو بهش بر نحنو یعنی ما ولی فعیلیتون اما اگه فعیلیه باشه رابط چیه میگه ولی فعیلیتون انفانت مبدو وطن به مزار این مصبت بدون قرد اگر شروع شده باشه با مزارهی که مثبته و قره هم نداره فقط زمیر رابطش به زمیر وحدت پس رابطش به زمیر است یعنی فر رابط و فرق رابط به زمیر وحده. یعنی ربطش به زمیر از فرده نمو انی جا انیزه یسر او و نون به یا منصوب به نظر خافز زیدون فایل یسره و فایل این جمله حال از برای زید و فایلش هم رابطه جمعه حال از فیل حالا اگر یک زمانی مزاره مثبت بود با قد با قد بود چی؟ او معه ها فمعل وابه یعنی غیر از زمیر واب هم میخواد فمعل وابه یعنی بابا یعنی زمیر که بود در مضارع مستمر گفتیم میخواد بخواد حالا میگه اگه قد داشت غیر از زمیر چی دیگه لازمه وا وا بندازه حرف نه و نعمت و آزا یا ا یا یو یا زی. زیانه یو تو ازی. تو ازیانه. تو ازون. تو ازون. نه نوی و قایه یا مفرومده توزوننی لما هم که جار مجلوم مطلق به توزوننی لما بوده حالا که شده مایز که کنیم پیغمبر میگه لما توزوننی برای چه خاطر عذیبیت میکنید شما ما رو آزار میدید من و قد تعلمونم میرسود و حالا که یقین دارید شما به تحقیل دقت گفتن برداشتن گفتن علیه او درس دقت برای چیه اینجا؟ ضمیر تَعْنِیمَ وارش خب این جمله ها راست از برای کی؟ از داره فاعل تو اسونه فاعل تو اسونه که جمع مخاطب مذکره امواب هم ضمیر هر دو رابطشه از این جمله یام انی رسول الله این طعنمون جز افعال قلبه دو تا مفعولش اون و مصدر محول صله مصدر دو تا رو میگه یا اسمشه بعد الا و اللا یعنی چی یعنی اگر اسمیه نبود که گفتیم در اسمیه هم میتونه زمیر بیاد هم میتونه واقع بیاد هم هر دو اگر مزاره مصبت هم بدون قد نبود که گفتیم فقط زمیری اگر مزاره مثبت ارجی با قد هم نبود که گفتیم هم زمیر هم واقع اگر هیچ کدوم اینا نبود فکر اسمی مثل اسم اسمی بقیهش مثل جمله اسمیه. است یعنی چی؟ یعنی میتونه هم با واف بیاد، هم با زمیر بیاد، هم با و کل اسمی میاد. ولی وقتی مازی موسبت میگذاریم، ولی اگر مازی موسبت، اینم باز تو ادای خودم میگم که حتی گفتش که فیه بحث من اون بحثش رو هم کن زیک کردم اگر مازی مثبت، آه مثل مثلا جا از و قد تلعت شمسو جا از و قد تلعت شمسو یعنی چی؟ یعنی آمد زید و حالا که خوشی طلوع کرده بود جا از و قد تلعت شمسو اینجا الان چی رابطه شه؟ و قد تلعت شمس؟ واقع یه چیزی دیگه رابط اگر مازی مثبت با بدون زمیر مازی مثبت بدون زمیر یعنی فقط رابطش واقع باشه اومد حال واقع شد لابد قدم داشته باشه یعنی مازی یا زمیر دارد یا زمیر نداره اگر زمیر داره ممکنه قد داشته باشه ممکنه نداشته باشه قد واجب نیست اما اگر چی مازیه و واقع هم دارد زمیر هم ندارد حتما و حتما باید چیزش باشه میشه ولو این که در تبدیر الان مثلا همین جا هر زیدون و قد تلرد اگر قد نبود اینجا ما چیز کار میکنیم تبدیرش به هک فرونه بله کیفت هک فرونه و وقد کنتم انوادن فریا وقد کنتم پس چی گفتیم؟ من عبارت اینجا این مطلق ها و لابده مع ما مازی المصبت نمی پرد ما گفتیم لابده مال مازل خالی خالن خالی من از زمیر لابده از مازی مثبتی که خالی از زمیره که حتما قد بگید ولو تقدیرن ولو اون که اگر نباشه ما کار کنیم تقدیر. یعنی اگر نبود ما تقدیر نبود هیچ هم دوش. ولو طبعا. از ساله جمله جمعه سفر الواقعت و مفعولن به ها جمعهی که مفعولن به و تقعه و محکیتن به قول به قول این جمله محکی قول میشه مقبول قول هم بهش میگن مفعول قول هم بهش مسدچی قال امّی عبداللهی رو میشنویم امّی هم میشنویم اصلا یه جمله خبر قاله میشه قا چیز مفعول قاله میشه قاله فی زمین فایده شد به عنزت مسیح میخواد امّی عبدالله این جمله باز خبره کهش ما هرگز نانستم قال امّی همین ممکنه که به جای قاله قیده بشه اگه قیده بشه چی میشه اونوقت؟ بینید عبد الله. چه معلی پیدا میکنه؟ فکر نده قصه اضاقی للا لا توفصدون فلا لا توفصدون هست میشه همون که محفوظی بوده میشه نحو قال عدي عبد الله من مفعولا ثانيا ده باب صدر ممكني در اصل خبر بوده الان مثلا زيدون يهو این جمله جمله چیه اسمی است زيدون يهو حالا علم تو بر اساس داشت چه علم تو زیدان يهو علم تو زیدان يهو علم, علم تو میشه فعل و زیدن مخبوله و جمله جمعه یبوما مخبول سانیه محلم این در واقع دون بحث چی بود؟ دون بحث خبر میتونستیم جاش بود سانیه لباب سال سانیه لباب علمه ممکنه بگیم علم تو زیدن امرن یبو علم تو زیدن عنده یا بقول یکا از خبر شد سالس. چه منصور. و معلقا ان عامل و ممکن ممکنه یک جمله ای عامل ازش چی شده باشه؟ تعلیل شده باشه. حالا یا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با استقام درمازه یا به خاطر ایت واسایش لامتداریت درمازه یا چیز دیگه ای که دارای صدارت نقد نحبی لِنَعْلَمَ مثل این مثال ایل هزبین احسا این وان یعنی برای اینکه که یقین ما ایل هزبین احسا ایل هزبین مبتدا احسا گفتم این چیه؟ اول تفصیل را فیر مازیم چرا گفتیم اول تفصیل نمی باشه؟ گفتیم چون اگه اول تفصیل باشه باید از خلاسیه مزید ساخته باشه احسا یوکسی احسا انتعاد دونه مطلعه لا توسور آمار کردن شمارش کردن احسا احسا فی زمین فایل این جمله خبره ایو در ظاهر در ظاهر خبره ایوه ولی در باطن محلی ثانیه کیه لنه است لن تو لفظ اینها عمل نکرده ایو محبوب احسان هم محلن ولی از یک جهت دیگه محلش چیه نصب است چون جمعه که لنه ازش پرده لنا على مع يول مزبينه احسن بعد كل این جمله ان یول مزبينه هم محلا چیه اجزایش منصوبه دیگه نه چون تعلیم شده باشه و قد و قد تمو با ان الفار همون بحثی که بالا گفتم میگه بغای اوقات نیابت میکنه اصلا. این جمله نیابت میکنه از فاعل اما ما مواردی که گفتیم فقط مخصوص همون بااله است دیگه زبان واو زنده و نمیونه اعلما و اینها نیست فقط تنو بهن الفائله و یقتس و, و زارکت به باب چی چی به باب بایل. اون جایی که ما گفت گفت نه بود یقال زینا عالم گفته میشه که زید علامه میگیم یوقالو و فعله مچهول زیدون آلمان چیه؟ ها؟ زیدون آلمان مطلع قبل این جمعه محلن مدفون نایبه؟ نایب برای کی؟ برای یوقالو. و یو زیدون یه نکته ای رو من در خصوص اون معلقاً انحل بین نحوی این افتلاحه. که آیا که آیا خود جمله که تعلیق شده محلن منصوب است به عامل معلق عامل معلق یعنی که آیا جمله ایل هزبین احسار رو نصب داده محلن یا مبتدا و خبر هر جزءش اش نصب چی میگم نه یعنی الان نگاه من میگم علم تو لزیدون قائمون علم تو چی چی قائمه بعضی نظرشون اینه که علم تو به و فایل لام لام افتدایی زی لفظا مرفوع محلا منصوب قائم لفظا مرفوع محلا منصوب بعد جمله و قارمون دیگه محله ارابی بگیر. نداره خود اجزاش دارن. خود جمله دیگه محله ارابی. اینه نظری. جور بعضی دیگر. بعضی دیگر نظرشون اینه. نظرشون اینه که نه زید مرفوع است. قائم هم چیه؟ مرفوع است. لام ابتداییت اجازه نداده که الانتون روی این جمله عمل کنه لذا رو لفظ این جمله عمل نکرده پس این جمله یعنی کدوم جمله جمله زیدان قایدان کل این جمله محلن منصوب است و مفغول کیه الانتون یعنیتی شده نه کل جمله محلن منصوب و مفغوله چون این دوتا نظره بعضیا به اون قایل شدن بعضیا به این قائل شدن بعضی ها گفتن هر دو درسته یعنی جایی که میشه جایی که میشه مفرد تقدیر گرفت که منصوب باشه مفرد تقدیر کنید یه جایی هم که نشه مفرد تقدیر بگیری آه؟ مثل علم تو نتعتیم نمشه علم تو یکی از چیزایی که تعلیم می کنه قسمه دیگه قلیم. علم تو لطاعتین نه منیتی لطاعتین نه لان بانونه بردی منیتی پاید شد این لطاعتین نه منیتی جواب قسمه این جبله قسم چکا کرده علم تو رو؟ ها؟ علم تو رو تاریخ کرده اینجا دیگه نمیتونی بگیم مفعول خبر مفتدار خبری در کار نیست بعضی گفتن اگر میشه مفرد تقدیر بگیری که منصوب بشه مفرد تقدیر مثل اگر نشد مفرد تقدیر بگیری نه صلت اعتباریتی بگو کل جمله معلن منصوب این نظر سوم نظر درستی ها نه نظر اول نه نظر دوم بلکه جمع بینه نظر مرحوم شیل توی معلقاً انحل او یعنی جمله ای که عامل ازش تعلیق شده جمله ای که عامل ازش تعلیق شده من برگردوندم به این که لنه علمه حییل حزبینه احسا زدم به احسا بکنم احسا جمله ای که عامل ازش تعلیق شده جون قبره مترس ولی ممکن هم هستش بعضی نظرشون این باشه که اینطور تفسیر کردن که نظر شیخ با من نظر سرکن بعضی گفتن نه شیخ میگه ایل حزبه این مبتدا احسا خبر این جمله کلش محلن منطوب میشه طبق نظر دوبون طبق نظر دوبون و این نظر نظر سریعه خیلی با تفسیر کردن که ایل مبتدا و احسا خبر این جمله محلن منصوب مقبوله لنه درمان ما بکنیونه که اگر حزبه خودش محلن منصوبه احزا هم جمعه که قبلش استقامه در اصل خبر بوده الان تعلیق شده و محلن منصوبه ما این نظر بعدی رو مراقب کردیم و سندر ناخران سی سی نه